گلون عیش میدمد ساغی گل ازار کو باد بهار میوزد باده خوشگوار کو هر گل نو ز گل رخی یاد همی کند ولی گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست ای دم صبح خوشنفس نافه زلفیار کو حسن فروشی گلم نیست تحمل ای سبا دست ددم به خون دل بحر خدا نگار کو شم سهرگهی اگر لافز آرز تو زد خسم زبان دراز شد خنجر آبدار کو شم سهرگهی اگر لافز آرز تو زد خسم زبان دراز شد خنجر آبدار کو گفت مگر ز لعلمن بوسه نداری یار زو مردم از این هوس ولی قدرت و اختیار کو حافظ گرچه در سخن خازن گنج حکمت است از غم روزگار دون طبع سخنگوزار کو